یکی از قلهای خوهران قریب سلام از روزی که شما رو خانم رزی بزرگی پیشنهاد داد برای کمک به خودش در ابتدا و از روز اولی که تشریف آوردی اینجا زحمت کارهای اینجا گردن و بردوش شما بود شاید هیچ وقت فکر نمی کردم که افتخار کنم به تصمیمی که گرفتم شما به شدت زحمت کشین قابل احترامین و کارهاتون رو دقیق انجام میدین که جای هیچ چون و چرایی رو برای ایراد گرفتن از کارتون نمیذارین امیدوارم که با همین سیستم و همین فرمون ادامه بدین برای بچهاتون، برای خودتون، برای همسرتون آرزوی خوشبختی میکنم و انشالله که ما بتونیم سالهای سال از شایی که شما دم میکنید میل کنیم و کیف کنیم از این که همکارمون شما موفق و پیوز بسید